فصل پنجم شدت بیشعوری بیشعوری برای تمام فصول در خیابان و در بیابان، چه در سنگر، چه در بندر از دیوان اشعار زندگی با بیشعورها برای بررسی و شناخت دقیق بیشعوری، فهرست کردن نشانه های فراوان این بیماری کافی نیست بنوان بیماری بیشعوری چنان قدرتی داره که همه زندگی انسان رو درگیر کنه و همه افراد در معرض ابتلا رو آلوده کنه. تا زمانی که این ویژگی مهم رو خوب درک نکنیم، نخواهیم تونست درمان ای برای اون پیدا کنیم. از بسیاری جهات بیشعوری مثل باد میمونه. ممکنه باد آرام و یا شدید باشه. همچنین متناوب و یا غیر یک نواخت باشه. شاید اونقدر ملایم باشه که فقط اندکی موهایمان را آشفته کنه یا انقدر شدید که چادر مسافرتی را از جا بکنه. بعضی وقت هم به شکل گردبادها ها و توفان های محیب ظاهر میشه و ویرانی های ای به بار میاره. مثل باد معمولی معمولاً بیشعور طوری رفتار نمی که باعث نگرانی کسی بشه. اما در فرصت مناسب همچون توند باد مهیبی میتونن با سرعت و دررند خویی وحشتناکی به دیگران حمله کنن. از این رو برای بهتر شناختن بیشعوری ضروریه که میزان شدت بیشعوری رو تعیین کنیم و همچنین ببینیم چگونه بیشعورها یاد میگیرن که عقایدشون رو رقیق کنن وزیر نقابی از نجابت پنهان بشن. بازی اوقات برای افراد نابیشعور درک بیشعوری به عنوان قدرتی که در کالبد شخص مبتلا نفوذ میکنه دشواره زیرا بشر با واقعیت های قابل لمس خو گرفته اما واقعیت اینه که بیشعوری همچون قدرتی غالب در کالبد مبتلا نفوذ و در شخصیت او حلول میکنه آغاز این فرایند هنگامیه که قدرت غالب به شخص مغلوب اعلام میکنه چیکار بکنه و چگونه اون کار رو انجام بده. در ابتدا فرد از این دخالت و تجاوز به حریمش منزجر میشه اما پس از مدتی 20 دقیقه یا همین حدودها این مسئله براش عادی میشه و دیگه توجهی به اون نمیکنه. این قدرت غالب یعنی بیشوری رو به عنوان بخشی از خودش میپذیره. و حتی موقعش هم که بشه به اون اتکا میکنه. کنه بیشعور تمام عیار در میان بیشعور ها مثل گردباد و طوفان در میان باد هاست این نوع بیشعور ها آسیب رسانترین نوع بیشعور ها از همانهایی که معمولا عکسشون از تلویزیون به عنوان افراد شرور و جنایتکار پخش میشه. بیشعور تمام ایار منبع بیپایانی از خشم و هیجان و ویرانگریه اونقدر که حتی از توی صفحه ی تلویزیون هم میخواد به دیگران آسیب برسونه او سرانجام طوری میمیره که فقط یک بیشعور سزاوار اونه در زندگی واقعی بیشعور تمام ایار به ندرت با بمب و سلاحاگ خودکار برای کشتن مخالفانشون به سراغشون میره تخصص این بیشعورها بیشتر در تخریب و انهدام شخصیته، هرچند توانایی اون را دارن که در سایر زمینه ها هم نفرتانگیز بیرحم، خشن و استثمارگر باشن. جان آدمی بود که برای یک بیشعور تمام ایار کار میکرد. یه بار به او گفته شد که باید تا پایان هفته گزارش مهمی رو آماده کنه و آماده باشه که اولین روز کاری هفته بعد اون رو ارائه بده او تمام تعطیلات آخر هفته را رو روی اون گزارش کار کرد تا اون رو به بهترین نحو آماده کنه و ساعت 8 روز دوشنبه گزارش روی میز کار رئیس قرار داشت پنج دقیقه بعد رئیس به او تلفن کرد رئیس فریاد زد، این گزارش باید تا روز جمعه آماده می شد. الان دیگه برای من ارزشی نداره. جان گفت، اما شما گفتید باید امروز صبح اون رو بدم. رئیس پرسید، منظورت اینه که من اشتباه می کنم؟ جان جواب داد، ابدا اینطور نیست، منظورم اینه که حتما من منظور شما رو اشتباهی فهمیدم. رئیس توپید، دیگه تکرار نشه و گوشی رو گذاشت. جان همیشه تلاش میکرد تا اون چرا به او واگذار میکردن به بهترین نه و انجام بده اما هیچ وقت اونطور که خواسته بودن نمیشد او مدام در حال وحشت از خشم رئیسش بود حتی اگه واقعا کارش بی و نقص بود و این در حالی بود که رئیسش در واقع برای انجام دو کار به او وابسته بود یکی کار خودش و دیگری کار جان بهترین راه برای سر سرکار داشتن با بیشعورهای تمام ایارینه که تا حد امکان با اونا سر و سرکار نداشت اگر چون این چیزی ممکن نباشه، راهی که جان یاد گرفت بهتره، رفتار با بیشترین حد احتیاط اصلاً به فکر این نباشید که این بیشعورها تحلیل برن، پیر بشن و خود به خود خلع سلاح بشن اونا بنیه و استقامت وحشتناکی دارن سردرد یا زخم معده نمیگیرند بلکه خود باعث این امراض میشن به نظر میرسه که رو این تنن آدمایی که دربارهشون گفته میشه خدا اونها رو نمیخواد و شیطان هم میترسه که زیاد بهشون نزدیک بشه و بنابراین این ما گیرشون افتادیم یک درجه خفیفتر از بیشعورهای تمام عیار بی گهگیرند این افراد مثل نسیمی در یک روز گرم و شرجی که غالباً مطبوعه اما ناگهان چنان شدید میشه که کلاه از سر آدم بر میداره. اونا میتونن همسایه ها و همکاران بسیار خوبی باشن و میدونن که چگونه با دست و دلبازی، مهربانی، نجابت و کمک به دیگران رفتار کنن البته اگه بخوان و به نفعشون باشه بیشعوری اونا فقط وقتی که تحریکشن یا تحت استرس زیادی قرار بگیرن ناگهان فوران میکنه. اما در سایر مواقع کاملا مثل آدمای معمولی به نظر می رسن. ادیف یکی از نمونه های کلاسیک این نوع بیشعوری بود. مادر جوانی که میتونست استرس رو تحمل کنه و در هر شرایطی به طور قابل تحسینی وظایف مادری رو انجام بده. او بچاش رو در ناز و نوازش بار آورده بود اما روزی ناگهان اون روش بالا اومد سه بار به بچاش گفته بود که اسباب بازی‌هاشون رو جمع و جور کنن اما یرو رو بعد که به اتاق اونا رفت باز هم دید که اسباب همون همونطور ریخته و پاشیدن بنابراین این همه ی اونا رو جمع کرد و توی چند تا جعبه گذاشت و بعد جلوی چشم خود بچه ها همه ی اونا رو به یک مؤسسه خیریه داد. امدنم ها را مجبور کرد تا خوب نگاه کنن که چطور تمام اسباب بازیه نازنینشون رو صدقه میده. ها تا چهار روز بعد گریه میکردن اما او خم به ابرو نیاورد. ادیث به اونا گفت که اگر اسباب بازی تازه میخوان باید پولاشونو برای خریدش جمع کنن. و تا که هیچ کس ندیده یه بچه 3 ساله منبع درآمدی برای این جور مخارج داشته باشه رام ترین نوع بیشعورها شعورها آبزیر البته منظور این نیست که این نوع بیشعورها کم خطرتر از بقیه بیشعورها، بلکه منظور اینه که زیاد به چشم نمیان. بیشعورهای آبزیرکاه با مشاهده واکنش جامعه نسبت به بیشعورهای تمام عیار ترجیح میدن که پشت نقابی از مهربانی و خونسردی پنهان بشن. اما در این حال همواره می که چگونه این خنجر قلاف شده رو به موقع بیرون بکشن و بدون اینکه هیچکس هیچ کس تصورشو بکنه کار خودشونو بکنن بیشعور آب زیر کاه مثل بادی در بعد زهری بهاریه از آن نوبات هایی که هرچند دلنشین و مطبوعن، نرم نرمک آدم رو به چنان سرماخوردگی دوچار میکنند که نیمی از تابستان صرف دست و پنج نرم کردن با اون بشه. ممکنه یه نفر سالها بین بیشعورهای آبزیرکاه زندگی کنه، اما متوجه بیشعوریشون نشه. بر حسب ظاهر شاید رعوف، خونگرم چرب زبون، دست و دلباز و حتی پرهیزگار به نظر برسند. اما همه این صفات در حقیقت بازیهای تمرین شدهی برای فریب و جلب اعتماد دیگرانه و در پس این کارها اونا به همون ترفندهای معمولی بیشعورها مشغولن بیشعورهای آبزیرکاه ممولا به صورت منفعل فعال عمل میکنند. اونا بیشترین آسیبشون رو از طریق قفلت و تقافل وارد میکنند. به این صورت که طوری در کارهای معمولی و موظفشون دوچار خطا میشن که زیانش به شما برسه. از سو آنچنان برای شما دلسوزی میکنن که انگار مادر ترزا هستند با این تفاوت که هیچ کمکی نمیکنن. دکتر روید در کتاب بیشعورها در میان ما مینویسد آسیب رسانی و مرد و مازاری بعضی از بیشعورها خودکار است. برای این کار احتیاجی ندارند که دروغ بگویند، کلک سوار کنند، از کوره در بروند یا دعوا کنند. بلکه فقط با تنها گذاشتن شما در موقعیت که بحرانی یا پرت کردن حواستان از وظایفی که باید انجام بدهید و سرزنشی که بعد از آن نثارتان می شود به هدف خود میرسند. رسند. که آب بر دو گونه کلیند. خوشرو و ترشرو بیشعور بودن به سبک آب زیر کاه خوشرو برای خودش هنری محسوب می شود این بیشعور در مقابل شما شیرین و چرب زبانند بعضی وقتها آنقدر شیرین زبانی می کنند که آدم فکر می کند نکند کاسه ای زیر نیم کاسه شان هست که خب البته هست این افراد به هر اتفاقی که پیرامون شما میافتد علاقه نشان میدهند و به خاطر ناکامی هایتان ناراحت و غص دار میشوند. البته این فقط ظاهر قضیه است و در حقیقت به خاطر هر شکست و ناکامی شما خوشحال هم میشوند. منتها با این روش و بازی کردن نقش مونس قمخار به تدریج شما را مبدل به چنان آدم دل نازک و افسردهی می کنند که برای هر چیزی از آواز غمگین پرندگان تا لنگیدن یک سوس که همم گریتان بگیرد تا در نهایت به عجز کامل برسید و برای مشاوره و راهنمایی در هر کاری محتاج و وابسته به آنها بشوید. بیشعورهای خوش روم معمولاً در اماکن روحانی یافت می شوند. چشیشی به نام باب این را در یکی از جلسات درمان عمومی تعریف می کرد. یک روز بعد از اور قرار بود باب جلسه ای رو با اعضای کلیسا برگزار کنه. اما در آخرین دقایق به مرکز خرید اصلی شهر فراخوانده شد تا در جلسه ای که اصخف برای بحث در بیخانمانها بی خانمانها ترتیب داده بود شرکت کند. او دستیارش کارولین تیتزورسی رو به جای خودش به جلسه اعضا فرستاد. یکی از اعضای حاضر در جلسه برای بار دوم نسبت به قیبت باب تذکر داد. پاسخ تیتزورسی همان چیزی بود که از یک بیشعور خوش رو انتظار میرفت. او گفت ما باید دعا کنیم باب هر هرچه زودتر از این راهی که میرود گردد. باب این تقنه را روز بعد از دیگران شنید. وقتی که ماجرا را به روی کارولین آورد، او لبخندی زد و ضمن عذرخواهی ادعا کرد که چنین منظوری نداشته و مطلب بد نقل شده است. او با خوشرویی گفت: من گفتم که دعا کنیم تا شما زودتر از آنجا برگردید و به جمع ما بپیوندید. قشای شیرین و دلچسبی که نیرنگهای این نوع بیش با اون پوشیده شده باعث میشه که گیرانداختن بی خوش خوشرو بسیار سخت باشه و تازه اگه بشه موچشون رو بگیری همونقدر زبون بازی میکنن تا سرانجام شما را گانه کنن که سوء تفاهم پیش اومده بیشعور آبزیر کاه ترش رو خیلی شبیه اون قبیل گربه های خانگیه که تا وقتی در دامن آدمان خیلی دوستانه و ملوس فقط خورخور میکنن. اما تا پاشون به حیات خلوت میرسه به درندگان خونخار تبدیل میشن و از بابت این خصوصیت دوگانه شگفت آورن. این بیشهور ها به هر کسی که شادتر، موفقتر و با استعدادتر از خودشون باشه حسادت میکنن. در نتیجه در پس ظاهر ملاجمشون مثل دیگی در حال جوشیدنند و از هیچ نوع نفاق و اختلاف روی رویگردان نیستند در ظاهر همیشه به دنبال اتحاد فامیلی و دور هم جمع شدن خانوادن. اما در واقع به طرز روشمند و ماهرانه ای از همین فعالیت‌هاشون چنان در جهت سمپاشی و مسموم کردن فضای خانواده استفاده می‌کنند که برادر علیه خواهر، پدر علیه فرزند و عمو علیه برادرزاده موضع بگیره و همه با هم دشمنی بکنند اونا در قالب مدافعان اخلاقیات و پاکدامنی هم ظاهر میشن و تقریبا همیشه روی مسائل ریز و کم اهمیت متمرکز میشن از این رو منبعی از غیبت و بدگویی و هرچند چند هیچ وقت به خاطر غیر اخلاقی بودن غیبت قبول نمی کنند که در حال غیبت کردنند همیشه در ملع عام با آبرو و حیثیت افراد بازی میکنند همچون بیشتر اخلاقیون و مدعیان افاف و پاک دامنی امروزی، بیشعورهاگ آبزیر کاه ترش رو معمولاً طوری جست میگیرند که انگار مجسمه ای از اخلاق حسنن، اما این جست ها هم چیزی جز فریب و سوء تفاهم نیست. علاقه زائد الوصفشون به کشف و مثلا اصلاح گناهان و اشتباهات دیگران در حقیقت ابزاری است برای انحراف افکار و پرت کردن حواس دیگران از اشتباه و نقایس خودشان اگر منافع یک چنین بیشعوری شعوری اقتضا کند میتواند چندین ساعت خطابه قرائی در باب فروتنی، انسانیت و بخشش برای شما ایراد کند اما خدا نکنه که یه بار از همین آدم طلب بخشش کنید آن وقت معانی جدیدی برای کلمی بخشش یاد خواهید گرفت. معنیهایی از قبیل مطلک فحش و داد و بیداد. تلاش برای تشریح و دستبندی شدت بیشعوری نباید باعث بشه که هیچ کدوم از اونا دست کم گرفته شوند یا گمان شود که بیشعورها همیشه در یک محدوده تعریف شده عمل می‌کنند. چه بسا یک بیشعور تمام ایار هم با داشتن یک شغل خوب و خانواده گرم، مدت های مدیدی مثل یک انسان با شعور عمل کند و در دسته ی بیشعور های گهگیر قرار گیرد. بیشعور آبزیر کاه خوش رو هم اگر خسته شود و یا مستره باشد، ممکن است که به نوع ترش رو تبدیل شود. از آن سو بحث درباره شدت درجات بسیار مهم است. چرا که تحقیقات نشان میده وقتی که آدمهای معمولی کلمه بیشعور رو میشنوند فقط بیشعور تمام عیار به ذهنشون میاد همین مسئله باعث میشه نتونن بی های گهگیر و آبزیر کاهرو رو تشخیص بدن و بشناسند علاوه بر این ممکنه برخی از اشخاص به خاطر نادیده گرفتن پارامتر شدت بی نفهمند که خودشون هم بیش گیریم گر که تمام عیار نباشند چه از روی کنجکاوی شخصی درباره باره مطالعه و تحقیق می‌کنید و چه در یک دوره زمانی قرار داشته باشید در که این واقعیت که تمام بیشعورها، روشها و منشهاگ مشابهی ندارند، بسیار مهم است. اهداف اونا و ساختار کلی شخصیتشون مشابه همه، اما ممکنه ابزارها و روشهاگی رسیدن به هدفشون به کلی با هم متفاوت باشه. شاید این نکات به نظر مهم نیان اما اگه نتونیم بیشعورها رو دسته بندی کنیم هرگز نخواهیم تونست به درمان درست و ریشه ای اونا بپردازیم به قول یکی از بیشعورها اگه جزء راه حل نیستی پس لابد بخشی از ای. فقط یک بیشعور در حال درمان میفهمه این حرف یعنی چی؟